korakshoda fazlas ul dar navo so benevi sanemisha basho yapma bi gamachake kelisha basho joykari dor dor posto har kam o kharash siotane daftar zarson avar benevis apoynum zopne shinu khune hoy dalto uneso to miko benevi ye cha ru ye dar دارو shode fazlas ul dar navo so benevi sanemisha basho yapma bi gamachake kelisha basho joykari dor dor posto har kam come over